الله عز و جل مجددن مجددا سوره اعلی آغاز می فرماید بحث توحید را تا آخر آخر قرآن مجید بحث بحث توحید است اما دو چیز هم توحید هم تزهید من دنیا تزهید من دنیا یعنی کنار کشیدن از دنیا یعنی به دنیا دل ندادن دل نبستن به دلیل اینکه یکی از امدترین موانع دین و امدترین موانع توحید دل دادن و دل بستن به دنیا است. انسان وقتی که دل میده در وجود او تکبر میاد، غرور میاد، غرور و تکبر که بیاد از توحید و از نعمت ایمان محروم میشه. لذا الله تعالی در ادامه سوره ها هر دو موضوع یا در بعضی سوره ها یک موضوع زک میفرمه. یا تنا تزید من الدنیا است یا توحید هست. اللہ می فرمائے سب بحصم ربک الاعلا تسبیح بگو بنام رب اعلایت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که این آیه نازل شد فرمود که بخانید سبحان ربی الاعلا صحابه همی خان همین خاندن لذا سنت همینی که وقتی که این آیه خانده میشه سب بحصم ربک الاعلا ما همه بخانیم سبحان ربي الاعلا و وقتی که آیه سب حسم ربك العظيم خانده میشه بخانیم سبحان ربي العظيم وقتی که این آیه نازل شد سيدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت می فرماید که رسول اللہ فرمود اجعلوها في سجودكم این را در سجدیتون قرار بدید لذا کسی که در نماز هست بالخصوص نماز فرض وقتی که امام میخاند سب حسم ربک الاعلا اونجا لازم نیست که بخاند سبحان ربی الاعلا چون وقتی بسجده برید در سجده میخانید اما خارج از نماز سنت اینه که وقتی که کسی میخاند انسان بخاند لذا الله عز و میفرماید سب حسم ربک الاعلا تسبیح بگو بنام ربت اون ربی که اعلا هست برتر و بالا هست بسیاری از علماء میگویند این درباره آغاز نماز است ابتدای نماز است یعنی نماز را وقتی که شروع میکنی با نام رب اون نامی که از همه نام ها اعلاتر است به همین خاطر ما نماز را که شروع میکنیم چی میگوییم؟ الله اکبر پس این بعضی از علما گفتن اشاره به اون هست که نماز را آغاز کن شروع کن با نام رب اعلا و برتر بالا الَّذِهِ خلق فَسَوَّا اِن دَلِيلِش هست اون ذاتی که آفرید هر چیز را فسوا، پس برابر آفرید یعنی هر چیزی را که الله عز و جل آفرید به حد و اندازه آفرید برای او حد خاصی تعیین کرد اندازه خاصی تعیین کرد. مثلا عمر انسان به اندازه هست. اون چیزی که مخلوقات دیگری که الله پیدا کرده بعضی مخلوقات هستند عمرشون از چند ماه تجاوز نمی کند پرندهها هستند حشرات هستند بعضی از چند روز تجاوز نمی کند. بعضی حشرات را میگویند که فقط سر روز زنده هستند بعضی ها تا چیل روز هستند هر چیزی را الله تعالی بر اساس اون خلق و بر اساس اون چیزی که نیازش هست همون اندازه ترتیب داده برابر کرده و بعضی ها الله تعالی تا روزی که این کائنات هست اونها را نگاه داشته مثل خورشیده، ماه است ستاره ها هستند هر چیزی را والذي قدر فهدا و الله آن ذاتی هست که مقدر کرد پس برای هر کسی هر چیزی یه چیزی را مقدر کرد و او را راهنمایی را کرد. مثلا وقتی که ستارهها را پیدا کرد وقتی که خورشید را پیدا کرد وقتی که ماه را پیدا کرد برای اونها مقدر کرد چی یک مداری را یک مسیری را که در این مسیر باید حرکت کنند. اونها را بعد از اون راهنمایی کرد به همون صورت در حالت چی باشند چرخش باشند در حالت حرکت باشند در حالت سیر باشند و بعضی گفتند که برای هر کسی الله چیزی که مقدر کرد او را به همون سمت صور راهنمایی هم کرد. مثلا برای انسان روزی مقدر کرد و انسان را بعد از خلق به سمت روزی راهنمایی کرد ابتدا هم راهنمایی میکنه بعدا هم ابتدا انسان که متولد میشه نو, مولو نو مولود هست الله راهنماییش میکنه که کجا باید روزی را پیدا بکنه دهان را به سینه مادر و پستان مادر الله راهنماییش میکنه چطور بمکد چطور شیر را بلاخره بخورد تازه وقتی که حیوان متولد میشه بره بزغاله فورا الله تعالی راهنماییش میکنه که به او گفته که بالاخره اون محل شیر و غذای مادرت اینجا هست در این بالا هست فورا بالا رو نگاه میکنه هی می بلند میشه که بگیره نمیتونه بلند بشه میفته می دوباره بلند میشه دوباره میفته مستقیم به طرف پستان میره چرا به سمت دیگه نمی الله الله کرده کرد جوجی که تو تخم هست تازه تخم باز میشه فورا میاد زمین را میزنه الله مقدر کرده اینجا برای رزقش را همون جا هم راهنماییش نمائیش کرده که چکار بکنه. لذا الله عز و هر چیزی را که آفرید فحدا او را کرد که اون چکار بکنه و چگونه مصرف بکنے والذي اخرج المرعا الله آن ذاتی هست که چراغاها را بیرون کرد در تمام بیابان بیابانگاہی تعجب میکنی این همه علف این همه سبزی برای چیه خدا درست کرده الله برای حیوانات شما درست کرده در واقع برای شما هستند اون حیوانات میخورن چاغ و فر بمیشن به نفع شما به شما شیر میده به شما گوشت خوب میده فجعله غثاءن احوا بعد از اینکه مدتی سبز میشه خدا اون را قرار داده ان احوا یعنی خاشاک سیاه تبدیل به خاشاک میشه سیاه میشه و بعد کم کم تبدیل به کاه میشه اون هم برای حیوان خیلی مفید هست در هر سوی اون نیست که از بند رفته از آل رفته بعضی وقتا از اون سبزش همون خوشکش مفیدتر میشه سنقی او کفلا تنسا الله عزوجل به پیامبرش فرمود که عن قریب ما بر تو میخانیم فراموش نمی کنی بعضی میگوین اشاره به همون تعجیلی هست که رسول الله به خرج میداد برای اینکه بخواند از یادش نروید الله تعالی فرمود که ما به زبان تو تو را به قراءت مجبور میکنیم به زبان تو جاری میکنیم تو فراموش نمیکنی الا ما شاء الله مگر اون که خدا بخواهد اگر خدا بخواهد آیه منسوخ بشه از ذهن پیغمبر پاک بشه اون چیزی دیگه هست ما ننسخ من آیت او ننسها. به خیر منها اگر آیه ای را منسوخ بکنیم یا از ذهن شما زهولش بدیم فراموشش بکنید بهتر از اون را برای شما نازل میکنیم لذا الا ما شاء الله مربوط به منسوخ است لذا هر چیزی را که خدا بخواهد بر زبان شما جاری میکند انه یعلم الجهر و ما یخفى غیب دان است او از همه احوال میداند هم جهر را میداند اون چیزی که علنی باشد اون چیزی که مخفی باشد همرا الله میداند و نیسرک للیسر و ما شما را برای راه آسان راه آسان را برای شما میسر می کنیم میسر می کنیم برای شما راه آسان را راه آسان چیه؟ راه شریعت است هر چی که ما خودمون درست کنیم تو اون تکلیف است تو اون حرج است شما ببینید رسومات محلی که ما داریم چقدر انسان سخته همش تکلفه همش انسان اذیت تو اون چیزی که خود ما درست کردیم اما اون راهی که خدا به نشون داده چقدر آسان است پس ما برای شما میسر میکنیم فراهم میکنیم یسرا راه آسان را یعنی راه شریعت را فذکر ان نفعت ذکر را ای محمد صلی الله علیه وسلم پس پند بده اگر پند ای دارد اگر پند فایدهی دارد نصیحت فایدهی دارد نصیحت بکن اما وقتی شما پند میدی نصیحت میکنی سیذکر ذکر و من یخشا پند حاصل میکند کسی که میترسد از خدا او پند حاصل میکند او راه خودش را از پندهای شما میگیرد و درست میپیماید ببینید آیه شریفه فرمود اگر پند فایدهی دارد پند بده آیا مفهوم مخالفش اعتبار داره؟ اگر پندمان نصیحت ما فایده داشته نباشه، پند بیم یا ندیم، در اون صورت انسان باید چیکار بکنه؟ در این رابطه علما میفرمایند که کسی را که شما دعوت می دهید، حال خالی نیست، المدعوب الى ثلاثت اقسام، کسی که دعوت داده میشه اون <متحن> مدعو شما اون <متحن> کسی که شما دعوتش میدید بر سه قسم است یکی اینکه که مقتوع به نفعه قطعا شما یقین دارید که او از پند شما نفع میبرد از نصیحت شما فایده بهش میرسد خب اونجا حتما نصیحت کن ومقتوع بعدم نفعه ياك ديجا شما يقين داريد كي بند برعين هيج نفي ندارت البته يقين شي كان ميتونن داشته باش انبيياء انبيياء مثل نوح عليه الصلاة والسلام كي خضاون بهنا وحي كن ودوعي نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن خضاون بنوح عليه والسلام واهي فرمود هر کسی که ایمان آورده ایمان آورده هر کسی که ایمان نیاورده دیگه از این به بعد ایمان نمیاره ایشون میتوانست که تشخیص بده که اینجا پند دادن و نصیحت کردن هیچ نفعی ندارد اینجا بود که دعا کرد که خدایا الان که اینها ایمان نمیآورن، پس اینها را نابود بکن تا همین کسانی که ایمان آوردند اینها را از بین نبرند و روی اینها تأثیری نگذارند لذا دومین صورتش اینه که مقتوعون به عدم نفعی کسی که شما قطعا میدونید از پند شما نفع نمیگیرد فایده بهش نمیرسد خب اونجا انسان میتونه پند نده اونجا نصیحت نکنه اما عرض کردم در صورتی که انسان به صورت قطع بدوند که هیچ یک از ما نمیدونیم شاید این کسی که ما تبلیغش میکنیم، موعظهش میکنیم، شاید سود بود شاید نفی بهش رسید و سفوم و محتمل محتمل چیه؟ اونی که احتمال داره از پند ما نصیحت بگیرد فایده بهش برسد هدایت بشه و احتمال داره که هدایت نشه لذا می بعد از این و محل التذكير ما لم يكن مقطوعا بعدم نفعه محل تذکیر اونی که خدای تعالی فرمود که فذکر اون کسی هست که ما به صورت قطع نمیدونیم عدم نفش را احتمال میدیم نفع میبره یا اینکه حتما نفع میبره اون باید فذکر اما اون که میدونید که حتما نفع نمیبرد مثال داده مثل الله ابن ابی و عبی جهل که بار بار پند دادند و از پند نتیجه نگرفتند خدای عز و جل هم فرمود سواؤن علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون اینها را دیگه بگذار برو برو به مکه به مدینه لذا فذکر ان نفعت ذکرا اگر پند فائده داره پند بده سید ذکر و من یخشا الله تعالی اینجا مجده میده. ان قریب انقریب پند حاصل می کند. تذکر میگیرد کسی که از خدا بترسد کسی که در درون او خوف خدا باشد ترس خدا باشد او از پند نتیجه میگیرد. گیرد اما کسی که در درون او هیچ خشیتی نباشد پند و نصیحت شما را مسخره می تبلیغ شما را نصیحت مسخره می کند, کند. وَيَتَجَنَّبُهَا اشقا، اینجا خداوند عز و جل محروم را وصفات محروم را کسی که محروم باشه از پند و انداز الله معرفی میکند کند وصفاتش را بیان می فرماید وَيَتَجَنَّبُهَا اشقا. الذي اصلا نار الكبرى یعنی دوری می کند، اجتناب می کند، فاصله میگیرد از اون تذکر شما از اون پند شما؟ بدبختترین و محرومترین انسان کدوم الذي اصلا نار الكبرى اون که مقدرش هست که داخل بشه در آتش بزرگ ثم ملاهیم موتوفیها ولا یحیا. اونجا که تو آتش بزرگ بره اونجا که تو جهنم بسوزه، اونجا نه مرگی هست و نه زندگی جدیدی. ثم ملاهیم موتوفیها ولا یحیا. منظور از مرگ اینه که قبض قبض روح نمیشه، لا یموت بقبض روح ولا یحیا و زندن میشه با استراحت کردن، راحت کردن، یعنی زندگی که زندگیش برای راحتی باشه نخواهد داشت. قد افلح من تزكى بعد از اینکه الله عز وجل بیان فرمود کسی که موعظه میشه الله تعالی نتیجه و سمره خشیت را بیان می فرمود که سيذكر من يخشى من يخشى قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى همانا رستگار هست کامیاب هست اون انسانی که تزکا اون انسانی که خودش را پاک میکند. از چی پاک میکند خودش را؟ از ها پاک میکند، از شرک پاک میکند، از اقاید خبیسه پاک میکند، از اخلاق زمیمه پاک میکند، از گنا پاک میکند. اون انسان انسان رستگاری هست. من تزکّا. وَذَكَرَ سم ربه بعد از اینکه خودش را پاک می کند تنها اینکه ما از گناه دوری بکنیم کافی نیست بلکه طاعت و عبادات را انجام بدهیم وَذَكَرَ اسم ربه فصلى نام رب را یاد می کند پس نماز می خاند یعنی چه؟ یعنی نام پروردگار را که ذکر کند نماز را آغاز می کند با نام رب یعنی با الله اکبر گفتن با ذکر پروردگار بل تؤثرون الحياه الدنيا عسكر در درين سوره ها هم موضوع توحيد هم هم موضوع تزهيد تزهيد من الدنيا فاصل گرفتنس دنيا اين بايش ميشه ك انسان بسويه دين وبسويه توحيد ان گوني ك حقش اسبي ايات الله ميفرمه بل تؤثرون الحياه الدنيا اين هاي ك نصيبتون ايمان نميشه نصيبتون هدايه نميشه مسئله اصلی چیه مسئله اصلی اینه بلکه شما ترجیح میدید زندگی دنیا را و عیش در دنیا را در حالی که والاخرتو خیر و ابقا آخرت بهتر است از نظر کیفیت هم و ابقا از نظر کمیت هم یعنی تا دیر میماند برای همیشه هست و با یک کیفیت بسیار عالی هست. مثل این دنیا، اونجا رنج نیست، اونجا درد نیست، اونجا مزی نیست، اونجا غم نیست، اندوه نیست. هم از نظر کیفیت، هم از نظر کمیت اینجا پنجاه سال، شصت، هفتاد، هشتاد، اونجا نه. اونجا پایانی ندارد. و در پایان الله تعالی می می‌فرماید: "ان هذا لفیس صحف الاولى، صحف ابراهیم و موسا." اون که اینجا بیان شد یعنی موضوع توحید این نهازا این دلیل نقلی بر توحید است از کتب گذشته یعنی اون مسئله توحید که اینجا ذکر شد و همچنین بی ثباتی دنیا و دوام و بقای آخرت هر دو موضوع توحید و تزهید در صحف گذشته هم بوده خداوان با همین اونجا هم برای امتهای پیشین بیان فرموده یعنی صحیفه های ابراهیم و موسی این دو پیامبر اول العزم که خداوند عزوجل برای اینها صحیفه زیاد نازل فرمودند بر موسی علیہ السلام علاوه از تورات صحیفه هم نازل شد راهنمایی های دیگری و برنامه های دیگری برای هدایت بود